هم، بیوقفه کار کنید این یک اصل فوق مهم برای افزایش تونه در خودتون احساس اضطرار ایجاد کنید ضربهنگ سریع ایجاد کنید میله به عمل ایجاد کنید سرعت بگیرید همین حالا انجامش بدید امروزه نیاز شگفت انگیزی به سرعت وجود داره. کسانی که کارها رو سریع و خوب انجام میدن از کسانی که کارها رو به آرامی انجام میدن بهتر ارزشمنتر و تواناتر به حساب میان سریع تصمیم بگیرید. حداقل در 80 درصد موارد میتوان همان موقعی که موضوعی پیش میاد در مورد گیری کرد. در مورد اونها تأخیر یا تنبلی نکنید. تصمیمگیری کند مسیرتون رو بند میاره و باعث ترمز کاراتون میشه. همه کارهای سری رو هم به محض این که پیش میان تکمیل کنید. معمولا هر چیزی که کمتر از دو دقیقه وقتتون رو میگیره کاریه که باید بلافاصله انجامش بدید. همیشه به این فکر کنید که اگه الان انجامش ندید بعداً چقدر وقت میبره که اون رو دور بندازید و دوباره انجامش بدید یک تماس تلفنی مهم رو فوراً جواب بدید و اون رو رسیدگی کنید یک بحث مهم را انجام بدید و همونجا برای حل مشکل تصمیم بگیرید به درخواست‌های رئیس‌تون یا مشتریانتون سری جواب بدید وقتی نیاز یا فرصتی پیش میاد سرعت به خرج بدید کاری کنید که به سرعت و قابل اعتماد بودن شهرت پیدا کنید هدفتون باید این باشه که به عنوان کسی مشهور بشید که وقتی میخوان کاری سریع انجام بشه اون رو به شما بدن. این کار میتونه بیشتر از حد تصورتون درها رو به باز کنه. این کار فرصتهای بیشتر و بیشتر رو در اختیارتون میگذره که کارهای بیشتر و بیشتری رو سریع و خوب انجام بدید. اینکه که کارها رو وقتی که پیش میان سریع انجام بدید یک بخش مهم دوبرابر کردن کارایی تونه.